گاهی در دلم عیبی از دیگران به نظرم میرسد و همون موقع استغفار میکنم و به خودش و کسی هم نمیگویم ولی خیلی زود همون اشتباه از خودم سر میزنه راهنمایی بفرمایید خب همین که به زبان نمیاره و تو درون خودش نگه می داره این خیلی خوبه نکته ای که خیلی مهمه این است که علت این که به اینون توجه داره اینه که به خودش توجه نداره باید ما به خودمون مشغول بشیم کسی به خودش مشغول بشید دیگران رو نمیبینه ای به دیگران ها اینای که هیچ سرک میکیشن بیکار هن. اون کار اصلی که رسیدن به خودشون هست رو پرامش کردن